اللهم خب از سر ناجمیت موشته خب یه که محکر شدیم زیاد روایاتی که معروف به حقیقت خبره بعدیه تبریبا اصول مصالبی که باید شد. بخشه متعرض شدیم بیشتر داره یه روایات رو بررسی اشمالی میکنیم حدیث شماره 48 از این بارد یک بارد پنج مقدمه چیزی از اصول کافی نهر شده علیه حسین ابن محمدشون از اجلا هست ها به دیگه من خاصی نداره احمد بن اطراعشانی قومی کهی کنون از اجلا هست از ابن موسیله توسیع سریع این هم دردت در شواقه در وساقت اما آبیت ابن بنظر به ما حدیث سعید قون حضرات یا برادران و سروران در اینجا تا برای موافقه اثر یا به زوال که فنانس از یک شجره ذی یا روشی دنیوی لسدد اینجا اختلاف مسخت است. فی بهم هم شیعه و در شیعه تون و نسبت به قال الحارثی از حدیثنا یشرد و بی قلود شیعه و نا خب این احساس میکنه که نقل حدیث سر بیت تشمالاً داره مقام بادیس درسته هم هست، مکر بادیگر بوده البته امزا میکنه احمام علیه السلام صحت روایت رو یعنی اینکه نقل حدیث و روایت کار درستی است اینجا خصوصیات ندارن که چه نبتی داشته باشه، چه صفتی داشته باشه همین حدیث در بسار درجات مرحوم سعدد نمجلده حال حضرتان احمد محمد مورد عشقریه چون این کتاب طریق مواجهده میشه بعد نیست اصانی اون هم روش کار بوشه اما محمد بن اسماعیی که نقدیر ظاهره در جلده اصطابن سقدان نوسته ولیه صرف این هم به نظر ما طریق بسار هم صحیح در کتاب وصول کافی حدیث شما رو یه روایتی هست که از محمد بن یحیی ا برقی دیگر نقل شده از محمد بن احمد صاحب نوازله یکهن ان بعضی از اصحابنا که اولش را مستدل و اصولاً این هم اینها مراسیل خصوصی این کتاب رو اشکال میکردن روایتی هست که تعلیله ان علی جنو لای تامل و ملک و مورا سریی نادر روش های نذار داشتن به تعلیش بدی روشن نیست دیگه مترس به شماله ماه چیه روشن حدیث شماله پنجا این به نظرم جامال این چاپی گرد که کم خلی کرد اگر آنون جویه کامپیسرشون چاپ جدید هستنشه حده احمد آن احمدال نفریز موسیق بید و بیدوها به محاده اخبار روشن احمدال نفریز در آن اینجا باشه حسین و احمدال نفریز باشه آنون کتاب یا اگر بشه معادن افتوان این صحیح تنجاهش شد یعنی خیلی بعیدی این احمد ابن از گستاد کلیم گستاد که الان درست بوشنی محمد ابن حیدیس ابن هم بعد ذهن المدائن محمد این شریع همونه فرقون رو به اسطلاح نشد که الا عبد حسن ساره درستگرد که امامهادی باشه که حقیق محمده که اتمام از کنیسه اومده و همون منظمونه و یک توضیه ها که امسا از کنیسه من میدم اینجا قلطی شده باشه سنگیش همون قلع عبدالحسن باشه نه بی محمد باشه چون به ذهن ما شوانه نشون میده که محمد بنیسه در حقیق کتابی به نام بسا اصل از ارسال که از امام عادی شده ای جمع آنی از اون به و ارمون سندش ابهام داره واضح نیست که سند این تا این که جنبه تربیری داره اگر این مزار استفاداتش قید و شنگیست و از سندش هم هم از شماره پنجاه و یک به بعد دیگه من فکره تونتون اصانیش در اگر برمی با باشه ده کنم روایی که در کتاب کشی و بعضی در کتاب دیگه آمده و که موظمش در کتاب کشی در فضائل زهاره و محمده مسلمونی ها در عده از رواس از جلای خب این طایفه هم آز اینجا آوردن پشت سر هم طایفه روزه کردن و استدلال به این مبنی محلی زدی که این محلی که امام فرمون دراجع در به این چهار نفر ناظر باشه به مقام نقل حدیث ولی که این روشن نیست چون این چهار نفر فقیق هم هستن خیلی بزرگ این ردی به خود خبر بله به خصوص نداره و... ولی توش کلمه حدیثم آمده حدیث در اینجا در منه حدیث مستلح ماست مثلا احالی سرسولانه احکام روی کرد سرسولان رو خرمدن علاقه این هم یک طاقه ای که بله تا اینجا تا شماره 58 از شماره 51 درصب اینجا که شماد تا شماره 58 اینها دلالت رو از ازامت شن امدهی بکنید من برای آشنای آقا تو که مثل همسوار در جاله رو حتی رفضه سندگی بکنن حتی اینجا اقرام محمد بن حسین رو محروف که درست میشوند شباهدی هستی که چی باشم و محمد حسین از درد شید به اونها استاد کشی یا استاد اگر خادش واضع میشت بعدی شید تن محمد بن حسین که از بزرگان همه جعفر رشید که باقرار جایی باقراره همه ابانه ابن تقلیب. من ندام رجال کشی اگر آوان بتون بیاره سفر 1828 اگر تو کانفیسر باشه اینجا ابانه ابانه ابن تقلیب آحمد بنه در این دفت بکنه چون آوانه یا میگه مثلا درست جعفر محمد نروح نمیشونه مثل مستار کشی این نشنات هم سبب این هست یعنی وقتی از نروشه بیشونه از ممکنه یک خرابی تو حدیث پیدا شده باید جعب بردن نیم که از تقلیب به نظرم عربانه عثمان دیده حالا نمیدارم کتاب رجال کشی در حال بنا سمیل در اینجا طبعا شواهد موجود قرد که برای باید عربانه بنا تقلیب باش کنم انا عبیل وسیرتون عبانه باید تقلیب از جزا عواند تابد نمیگه عواند عثمان باشه حالا چون اگر باشه به هر حال عواند تابد که است اما عواند عثمان هم سقط به ذهن ما میونه مشخصه عواند تابد بله نه نه نه عواند تابد عواند جعفر بن بشیر عواند تابد تن عبید الله باشه نداده اون چه کسی بله درسته عواند عواند تابد من عبی بسیر قاله قطول عبی عبدالله مثل در تبره این که از عجلی داخلی مرده از حال محمد صادق نرگو کنید در دمان خود محمد صادق و عباد شد چیز سالیا بیشتر قبل از محمد صادق شما خود کن قاله قطول عبی عبدالله عليه السلام اِنَّ عباد حدثنی اِنَّ زُغِیر و مِقْدَار و سَلْمَا زُغِیر و هنها در برزقیت سقیفه با از تحمیل بود در خانه از درخواه بود درسته اما اینکه الان واقعا بنا داشتیم که بیاد برای کمک امیور مؤمنین چه و مرداد و ترمان این دوستا چرا؟ حلق و روغو سما از درخواه بوده از اون حالت برسلام خدایی بودن یعنی حالی به حاله از جان گذشته به فیما برس هر بلا سرش رو در باقی ایمانش میگید لیوغا سیل عبوبک فقال لیلولا زراره و او لزنن تو ان احادی سعدیز سر روی کسی زراره شوش نبوده شاید مثلا افتاده قلت مثلا العبی عبدالله این زراره هر دست این اعبا اینجوری باز باشه این هم بایدن که اشکی خیلی خرابی داره این صاحبا یک روز یک صحبت باش به نظر من یک چیزی افتاده به لولا زراره این خیلی ربکی که نداره بون مطلب بالاش شماره 32 حدیثنی همدویه ابن همدویه ابن نسیم ایشون از مشایف کشیشونه به کشی شک توصیشون توصیح کرد احتمال میزن توصیح با از اینجای کتاب کشی گرده که الان نرسید. اینا شبهه داره بود. یعنی این شبهه اینه که نمی‌دونیم واقعا استاد ایاشی و کشی بواسطه شناخته نه استاد هر دو... چون هردو وارد شدن در این, هم حضرت هم این هم کتاب هم کشی گفته هستند این هر ایاشی این که کتاب هنوز بر ما نیست حالا حدثن یعقوب بن این مرد بزرگوار است یعقوب محمد بن خطاب هر بسیار این یعنی حمد بی ابن حسین و اهل کشید زادانشون به ایرام آمده چون یعنی عبور نزید بغدادی محمد ابن حسین کوفیه و حضرت از اجلا هم محمد ابن حبی امید هر جو هم کتاب ابن حبی عمر هم هر جو زروان هم ابراهیم ابن حبد الحمین و این حدیث صحیحه قال قال ابو عبدالله سلات الله سلام و علیه رحمه الله حضور آرفت این لولا زغاره و مظراره بولن در صد احادیث و عربی احادیث این جایه احادیث آنه نیست یعنی مکتب کنه در من حالا کنها خطابه خوده هزد این مصطلح خوده هزد رواید رسول الله بوده یا رواید ان آبارشون بوده در مراد باشه در این با اون حدیث اونه خوره هم نمیدونی اینجا اون شده اینجا زیلیون حدیث توی این مط حدیث یکماره پنجه و سه انا بازم حمده وی انا یعبوب ابن یزید انا القاسمین غربه قابل اعتماد قاسم شواهد یعظای اعتماد مثل به نظر یعبوب ابن یزید ان مثلا انا ابن عبی عمر انا قاسم ابن عبی عمر چیزی هم مثلا نگه و سکت باشه انا عبل عباس حضر ابن عبد الملک علایه واسند موجود معتبر سکت هم داشته باشه مثلا ابن عبی عمر بازم محترد. حدیث قبلی سقیل بود اینم معتبر قاد سمیت عبا عبدالله علیه السلام یا قول احب و ناس ادهی احیان و الواتن اربعتون بورید ابن معابیل و زراره محمد ابن مسلم ولی احوال احوال همون مؤمن و تاق معروفه محمد ابن علی التوفی که معروف بوده به مؤمن و تاق که اهل سامن از طلاقا به شیطان و تاق میگفتن اسم یک محله بوده در اصطلاق ما و گفتم به فارسی مثلا مثل پول در کله دار این رو در واقع عربی تام گفتم در طوچه این بوده اونجا که به اصطلاح ایشند دکان صرافی داشته خود ممر محول مانه تا سراب بوده نه سراب بله به معنای و کارش مثلا معرفت طلا و ورسند مثلا ده تا نو دینار نقشوش برای همین هم سنیابش شیطان و طاوت این شیطان از درد فخش نیست میبینشون نیستی استگاه چون خیلی مرد فوقلاده بود همین که مثلا دینا رو میگرد میگی مثلا دو دردش خراق خیلی فوقلاده بود خراقی رو برست نیست بود و بخش مثل شیطانی مونه و اقام احب و ناسه اله ی احیان و ام بادم احنا خوب بادم از حمدغی قال حدثن یعفو برن یزید باز در کتاب اختصاص مفید اختصاص یک مقداری شبه داره ان محمد ابن حسن این محمد بن زهدن صففا ده ببخشیم ابن ولیده ان محمد ابن حسن صففا ان یعبوب ابن یزی هر دو کتاب هم کشی و هم کتاب اختصاص برگره به یعقوب ابن یزی ان ابن عبی اومی را که از, از نصف بسیار معروف به کتاب ابن عبی اومی نصف یعبوب ابن یزی این شای در حقیق وقت د خیلی نسخه و معروفه زیاد ازش معروف شده این نسخه این صرف هندسانیه امام سالم که از اجلاد از سلیمان بن خالد اثر اثری در چون در جنگ با خودش زیدی بود و شخصیت های کوفه بود و همه شخصیت ایمی بود از قرا معروف قران بود تا خودش در دارد داشت چون زیدی بود در یام مصلیان با در شرکت کرد دستش رو از دست دارد. تا خود امیر کوفه درستش برید در جنب بعد چیه شد دنبال امام صادق قال سمع تو عبا عبدالله علیستان رو قد اول قیدید بود برشه از عجلا و است شخصیت اجتماعی هم داره تو زیمانه تو را با اعتراضش نام میبرن چیزه؟ معنیان اجمال های نه این حدیث صحیحه به سلیمان سلیمانه اقتر سلیمانه منخواه این هم صحیح قای ما حجل و احد از اهلی روایت و احادیث ابی این احادیث ابی و یکی یکیه اندل سراره و ابی بصیر لیس المرادی روایاتی که در ملح ابی بصیر یه داری یک مقدارش در تشیصله ابی بصیر گیر داره نه اول ابی بصیر مرادی لیس ابی بصیر اسدی یحیی اس یحیی بن قاسم یحیی بن قاسم الا اسدی ما در مجموعه دو تا عقوقتی بیشتر نداریم که مراضیه یکی هم اصدی یه اصدیه دوبه میان گفتن واقعیت نداریم و محمد ابن مسلم و برید برید ابن معایی و ولولا حالا ما خانه احدون یستن به تو حالا به نظر من یستن به تو اینه یعنی خباهت و جلولات قدر اینا حالا حالا حالا دین و مناعبی علیه السلام حلال الله و حرامه و مصافحون علینا به دنیا و سابقون سابقون ای سابقون ای از و باقا. باقا. سابقون این آقل آخره سابقون توضیر کرده سابقون از مصطلح ها به قرآنیه حسیلن باقی چند بار و از سابقون هم به کار بکار بودش چون اصحاب یمین از اصحاب شمال با سابقون که در اصحاب یمین مقدم یه اراتو به این به خود آیات و تفسیر مراجعه بشه خیدم زمانش مصاحب نیست در وجال کشی اشون که از شخصی به نام حسین بن بندار قومی به اسم حسینه حسین بن حسن نوبنداره احتمال از خانواده بندار باشه که الان آشنایی باشن داریم ترجیح به خانواده بندار راهسازی کردن اجوج بحث طولانی دیگه که چشمی جا نیست ان شاءالله یه وقتی که متعارف بشه قال حدثن سعد عبدالله احتمال می‌کنیم که مرکوم کشی تا خم آمده با مشوره درجه رجع بند کم از نگرفتی. پس این حسن روند داری نمی‌شودیم. قله عدد این عرب نام دندن، مصادره قبلاً حدیث قوم. قله عدد نه علیه نشود ایمان داری یا راضی. چه داری باشه یا راضی باشه نمیشناسیم این نمی‌شناست ما داری و راضی مادر هر کام که اسمش یزدیانی بوده است. البته از دست این که دو کشی خراب قال حدثنی محمد ابن عبی اومد به هر حال به ابن عبی اومد برمیگده که از اجلای اصحاب شاید یه نسخه از کتاب ابن, ابن عبی اومد ذرخی و سر بوده که ما این نسخه رو نمیشن انا عبان ابن عثمان انا عبی اوباید خود مستر زاله کتاب اون عبی خوبه ما از بیشتر مشکل دارد انا بي ابوذر حذا خالصا يا ابو عبد الله و زرعه ابو بسيد اصلا این زبایدی که در مله ابو بسید بوده بهش اینجوریه که اصلا مراد کیه بعد از چش ابو بسید اصلا دیدن ابو بسید مرادی یک اون روز چانس کشیدن ابو بسید در واقع خیلی مشکل در واقع و محمد بن مسلم و بردنا الذين بعلى الله و صلوا و الصابوا به اصطلاح واقعا این حدیث وزنهانا و از و السابقون رايت المقار این یعنی بر هم مقدم. ابن از هم مقدمان حدیث شماره پنجه و شیش حدیثتانی ابن سیر از قدیس تقرس حدیثتانی عبون یزید که بغدادی بوده و از روبات ابن عبی اومده ان محمد ابن عبی اومد ان جمیل ابن دراجین حدیث سعیدی قال سمیعت و عبا عبدالله علیه السلام یقول بشر المخبتین اصطلاح قرآنیست به جنده و برید و عبا بسیر لیس ابن البختری اینجا اسم پسیر و محمد المستق و زرار اربعث و نجبا الله علا حلاله و حرامه لولا خاولا امقطعت آثار و نبوه این به حدیث بهتر میکره امنا الله علا حدیث برمان داره چون حلال و حرام مضمونه اهم مضمونه حدیث شماره هجا و هفت حسین ابن حسن ابن اسمش بردین دید درست نمیشنسی خال حدیث عنی سرد ابن عبدالله که از عبدالله خال حدیث عنی محمد بن عبدالله مسمعی اینه درست نمیشنسیم از مشایخ سرد تو همی کتاب رو پشنیم ازش حدیث کرد مسمعی های طایفی های در بصره این داره مانداره مسمع ابن عبدالله از نباهاییون باشه و هر حال نمیشنسیم و مربون ابن ولید شیخ سرد و عبدالله کهان شیخ خناه ابن ال محمد عبد الله مزمعی این تلعیف و تلعیفش همین ابن ولی رو برمیگرد حد دستانی علی ابن و علیوم ابن اسبال علی ابن بد نیست به نظر ما و به همونتون تلعیف شده فیلی فیگیریش میشونه اما علی ابن اسبال سفر این جمیل ابن در را حدیث لولا محمد عبد الله مزمعی و استاده مرموم کشی مشکل خاصی نداره قال اوطادل از و علامو دین اربعتون محمد بن مسلم و برید بن معابیه و لیس بن البختري و زورا از هیچ اوطادل از رأسي به مقام نقل حدیث ندم. از یهمنیه باله. باز از زمین احادیث پنجاه باز از کتاب مسمایی، علی بن اسقاد، انصه محمد بن سنا، انصه داره، ان اود بن سرهان، بدین سرهان. سلام دلاته همه این گرگه دلاته را رسید اصد و کلب و زب و گرگ و زعیب این اسمه را اوسید و کلیب و این ها متعارف شد سمید عبدالله علیه سامی قول اینی لعو حدس و رجل به حدیث و انها عن الجدال و المراقی دین الله و انها همه عن قیاس فی افروز من اندی فی اول حدیثی علا غیر تعبیلی از کلمه اینکه از مشکلات حدیث علاقه این شبه در مدینه جریان بوده که یک وسیله برای باشه صدور کلمات در مدینه بوده و ثبتش در کوفه بوده دو تا منشه موشه کرد این تو مدینه این کار نمیگرد کوفه کوفه محل محلکتال آراء شیعه بوده رو همته این و عمد قومان ایت کلمان ایت کلمان ایت قومان فکلون یه تا و روسم او بر ساول و ضت هم مع در ای ستان اث به بهوا دیگه داریم که منخاطر میمثل من در روات تحقیه بیشتر بودم کهدر کمتر میکرد. این نص هاوردی کا زلا احیا هم و انواها ان ظرا رو محله مستمون و منحملده سمرادی وارد رژیه ها اولار ازتوانم بهرسست هست و اولار ازتوانم به سر تا اللار سالمون اولارات خب، ارز کرده سندش مشکل داره هم ابن بندار داره هم مسمعی داره اما خب مضمونش که باید هم از استشاده به شواهد قرآنی هم بله این تا اینجا راجبی بعد باز راجبی یک سلطل از است که در تحکیل نقل حدیثه حدیث پنجه از روزه کافی همهید ابن زیار سقرد وکن واقعیفی من حضر محمم رسول محمد از سماعه ایشون باطیق فقيه بزرگوار امام خیلی خریده شراب بود استاد ان وحدت ابن حث ایشون سرت انعریتی حدیث به طور خاص معتبر و اصطلاحاً معصم میونه قال شنوه صحابه عبدالله الاحسان ابو رحمن الله و عبد حدبن الى ما رو محبوب بود غلم یو بقیدنا اما والله لعو یرون محاصن کلامنا لکانو بیه اعز خیلی حدیثش نفیز برد ممستا تا احلو انیت علق عليهم کلمه فیه خود تو علیها خود اینکه خراب میکنه احلو تباره این حدیثیشون مره حجیه این که شیعیان احادیث خراب کرده در رسول امام صادق درس ترجمه ای الوه من کلام اینا رو ایشون نرمون کرده بشتر شدن علایمه شماره 60 اون حدیث معتبر سند داره اما به هر حال مشکلی داشت بده شیخ کلین تو روزه است هر کاری که حدیث رو در روزه رو نمیاره علامتیه که یک مشکل چیزی شده حدیث 60 مرحوم شیخ صدوق قدس الله سر عبد وارد بن محمد نردوس نیشابوری علینی واقعا تلاش عطار بوده جدش شده تلاش کرده میگه عطار بوده به هر حال ایشون و اگه رو نمیشناسیم و یه چیزایی میراثه و ازشون از طرز نظر میکنه احتمال میدیم جدی باشه فعلا احتمالا میدیمه کسی جدی کرده باشه نه عاد ابن عبدوس مش به هر حال نمیشناسیم اصلا مرو مفخ با این جرات مابش قمیا ها واقعا شده نگذا خیلیا هر چیزی صدوقه از این نیشابوری عطار اگه واقعا عطاری بوده چیزای از ایشون نالطری که واقعیتند. قال هم علی بن محمد بن قتیبه این شاگرد معروف به سریبی نداره. علی همدارن سلیمان ایشون اشعوری، عبدالسلام بن صالح حروی ایشون هم متوسط معروفه که مشهد طرف شهر هست. متوسط معروف حروی عبدالسلام بن صالح معروفشه میشه گفته آمی اون خیلی بشه حمله کنه که ایشون عامی نه اجمالا حبدالسلامون ساله غربی در میان اهل سنن حدیث بیشتر دارد در میان ما خیلی داره حدیث در احل سنن من تدریفشم کرده آل سمیز و عبدالحسن قدر علیه السلام یه بود رحمه الله و احیا احیام رما همچنین حدیثش خیلی بشنگیه و قلت و و بی امر کن آل یت علم و علومان آم و یو علم هن ناس یو علم و علومان آم معلوم نیست من از خصوص ح فهنالناس لولعلم و مهاشنه کلام نادر تلاعونه. کلی دقتی به حدیت اش، جوز به حدیت معروفه مثل ناس لولعلم و مهاشنه کلام نادر تلاعونه. بله ولی هزین سنادی خیلی بزرگش اینه داد. حدیت شما ریش 61 روزه معروف کافی بازم ویشون علی بن محمد. از ماشالله خیلیشان مورد داده بیینیم بعد دینسی شما ران. علی بن خوسعین. خیلی الان تشویشی در این نمیاد برای این اسم ورا واقعا علی بن حسین باشه ان محمد کناسی که نمی شاسی قال حدثنا مریره و الى ابي عبد الله موصل عنه في قوله عز وجل و من يرتقه الله اجله مخرجا وقتی یک شری دادرجه به تعبیر آیه این جزء احادیث تعبیری است سندش خیلی نقی نیست اجمالا اینه که ا ممکنه برم زمم سیاسی سییاگم به دیگران میگن دیگران, دیگران به ای برستن و خود این افراد به جای هست. شمالا بد نیست ب اما جنبهتحبیگیر داره و هم خیلی نری مصدرش هم که روزه کافی باشه خیلی حساباب کذایی برای مرب کلی در. این راجع به این تایفه بود که دو تایفه راجع به RN رو علی سوین یکی دو تاریه یک دیگری با روایات است که و تصحیح ما که این معروف شد در مباحث رجالی، علاوه بر یعنی شهر کشی هم در اول رجال اوضه شاد نظرش بوده ببینید. به علاوه دیگه یکی از مباحث رجالی شد که اگر کسی زیاد تبیح داشته باشد از اهل بصرت علامت بساغت کرد. این مجموعه ای است که بعضی در کتاب کشی آمده و کتاب مردم کلینی. این از کتاب کلینی محمد بن حاتم از مشایخ مضمون کده نیست، خیلی آشنایی دقیق باش نداریم. کده به احتمال غری از محمد بن حسن صفار بشونه نرو بکنه. صاحب نداره. محمد بن حسین؟ نه، محمد بن حسن جا. و یه محمد بن حسن است که در طاری ایشونه ملقم بوده برایت با صفار. احتمالاً اینونه. خیلی آشنایی نداریم. اشق از تاریخ دیاله. انصره بن زیاد، ان ابن ابن سنان، دیگه سلام محمد استانس حتی بلع سلام جناب ابن سنان بر نیخه. محمد بن مهران اجیلی داره سالان حالش آماده می‌کنه. علی بن این برادر آمار ابن این از اجیب علی بن خیلی کم هدیه داده کل امکانات شابش داده بشه در کل کتول ما نظر هم چی در کتول ارده و کی درده. لکن کرد از بن علین ان ابن هند که بال زمان در ابو عبد الله علیه السلام میگن اعراقم مناوله الناس. alors این از کردن از قرن 12 تقریبا 11 و دوازدهم که دی سعی شده که ایده توصیف و کای که از امراض توصیف همین شد. که مثلا اگر کسی زیاد همین سودا رو به مسلمی گفتم مثلا نداره، زیاد داره. ای رقمنات رننات علاقت روایت این مطلی که اینجاست این متن این اینجوری رجال کشی اوبرده از ابراهیون محمد نهبات خودتلی از خودتل بوده از ما خطاب اون طرف بوده حدیثانا احمد ابن ادریس قومی حدیثانا احمد ابن محمد نهبی این غلط محمد ابن سال ساب نوازاری لکنه آلا حدیثانا سریمان خطابی که نمیشنسیم خاله عبدالسلام محمد ابن محمد الان واضح نیش ان بعض رجالی ان محمد ابن همران الهشوی در کتاب کافی محمد ابن مربان الهشوی این همران مربان مقایسه <تصفيق> <تصفيق> علي علی ابن همزله ان علی عبدالله عبدالسال قاب اعرق منازل ناس مننا این مننا داره کتاب کافی نداشت علاقه در قواهیت این و اننا اینم یکی بله یکی دیگر حمدویه ابن نسیر این احادیث اول که دارو کشی هم اول اول, اول که دارو کشی دو این دوستا حدیثی حمدویه ابن نسیر کشی قال حدث را محمد ابن حسین ابن عبدال که اشون حضور باره ان محمد ابن سلام که خوب مشکل داره ان حضیفت ابن منصور اگر محمد ابن سلام نبود حدیث صحیحه ان عبی عبدالله علیه السلام آر آل مثله الا انفید بدل قولی منازل ناز احرقون منازل رجال منع به قضیل علاقه به قواسی مهننا همشه اینجا که ابن منصور داره اونجا علی ابن هنزده این دو تا سنده اساسی یکی در کتاب کافی آمده بود دو سنده در کتاب کشی همشم گیر داشت, داشت تمثل کردن به این حدیث بگیم اینکه مشون دارید میشید به ساعت افکار به کلمات عزیز از نظر من صابرن توضیح بدم چه ناس باشه چرا درجه باشه مراد اهل سنت, احر. احر سنت احر نا. ناسه از این بحث ما نداره ا اینه ن نعوذ را من نا ناصی ببینید ما این شمینه نسبت با نظرش چه اثر ما رو میکنه اگر از ما harm میکنه این خب توسط دیگه اگه از این ما من نا اگر میخواهیم ببینی این سومیا در وردی هستن نسبت به ما نسبت به شیعه ببینی از این ما اخربه نه را را ن lawsuit او نایم این ناسا الان همه را را را اگر مثال ۲۰ صاعدیس نه را را یه اینکه با اخربه خود یکی ۲۰ صاعدیس نه را را را را خب اصلا نه را مشکل داره مشکل فکری داره علایه این روایات های زیاد شد چرا؟ چرا؟, چرا؟ چرا؟ فس براسه که در جزو خلی جناب آقای حاکم انشاروی انسان زیادتر نرم سونیان بهش همه همین بباطر کسی روز بودن نرم میکنم زیاده نرم نرم کلا نرم نه به آن من ها نه اعتقاد اونا بشی هست نه به زمان خود تا دوران ما هم شروع ما داره در این دستور دار میخوان ایجاد رو می‌کردن گفتن حدیث یکی از اون رواشون <تصفح> در ما حدیثو اله انجبر محمد گفتم این تو کوفه مین بود چطوری جواب تو اینو بده ولی تام صبرو این صاف به من میگن حدیثو گربار کرده بعدنا اون که چون چون تو کوفه خاگی این تو این مطلب تو کوفه وید قرار این که ولدا فقط کوفه بهله به نزدیک بودن باعثو دورو مطلب وادیه این از اون که ۴۰ تا روز دلار میکنن چرا اینقدر بیزاره اصلا؟ از مناظر نه، از مناظر ها من چه نرداشت چه درجه ما کیشون ها داریم؟ این از ما رو خیلی وادی هستن. اگر دوباره نه میتونم به ما اتفاق مکرم واضحی چرا تاره به کسا تحضیل علامات بساقته نه در حقی به این زبایت چرا ناس رو بزخونی آخواد نداره؟ این زبایت متعارفه ای. ناس اینه ناس یا خیلی متعارفه این کنان این توه بله وقت ربایت دیگری این تو در کتاب کشی تاره و دیگه مربون کلی نداره این ربایت اینه که محمد ابن سعید یا سعد کشی ابن یزید اینم هم اسمش میشه درست بردی تیم هم حالش یه جدول ابو جعفر محمد نه هیو بخاری بخواری از مشاهیر معلوم قال نمیشن. قالا حدس ابو علی محمد نه محمد نه محمودی رفعه او این خیلی مشکل داره همه جا تش میشود. قال قال اصاد و علیه السلام ایران کن منازلش یه این من جدی کلمه هست. این توش منازل یه آهن داره. بحثی هم رفتی به،, به ساقت نیست درجات شیعه رو ببینیم بهقدر قدر ما سنون من روایت ایران ببینید چطور با دقت روایت رو هم نردیم آن متسامه هم این یه سنون نقطه یه سنون اصلا شما نگاه مکنیم پس کلی با چه دقیقی نرمون کنه یک آیدگی با اون دقت نزده این مراد اینه میخواییم شیعه رو بشناسیم ارزش پس که مثلا فقیه شیعه رو بخواییم پیدارشو بدونیم بیدونی چه مقدار خوب یحسه روایت خیلان خصوصیت بگید نه کسره یعنی قدرت علمی، شخصیت علمی شخصیت علمی از باید بخواید بشناسیم شیعه ما این چه مقدار خوب، یحسه احسان به معنای زیبا و بشن. این مسلط به روایات ما اقرت و مناظر شیعه اتنا به قدر ما یحسنونم این روایاتی هم امنا بیلیم در آن درده خوب بلدن حدیث خوب میشناسن حدیث شناسن طبقه این اون مقداری که حدیث خوب میشناسن این درجات شده این شرفی به کسات حدیث به کسات حدیث اما را تو بزاره به قدر بزاره اینجا بستیم بزاره که نیست اصلا نیست که نه تقصیر هم قل رو یه ها خوب بد خوب ها. نه مواجهه و و نه خب الان ما شون در آن نوری دیگران امارات و ما حق ما منظوری نبود. هر تو مو نه منظور این بود این سه تا حدیث رو اول رجال کشی آورده ولی اصل موجز خبر رو اثبات می‌کنه اجمالا چرا ما اصل اجمالی شده قبول کردیم که من الله نحو در طیب ممن متذکری منازل هم خری منه خری حتی یکون محددا محددی استلادی بوده که از زمان فعلا هم بوده محددی چیزی که مثلا ملائکه با او صحبت می‌کنن یا خدا در قلب او الهام می‌ونجازه قل فقیل له او یکون المؤمن محدثا قال یکونو مفهمن یعنی اصباح خدا تخفیل میشه او مفهم حالا این یک باوی زرفاتی که اندلعیم محدثون توی کتب احضر سنتم هم بیگم این مطلب رو دارم اویتون راجیب اومد بیم یه حدیث معروفیست که کان فی کل اومت محدث و لکان فی آده محدث لکان اومد بسه حالا ایه حاله این هم یک مطلب این حدیث که ذکر شده مطلبش درسته اما ربکی به این بحثی که الان در مجال ما مطلب شده نیست مطلبش درسته برای مناظر شیعتنا با قبل ما یخسرونه من روایاته من حدیث شماره 64 این به اسانید متعدد دیگر شما شسته نمی کنیم اسانید متعدد یکیش بعد میاده به در کتاب کافی هم هست محمد بن خالد بردی هم عبد بختری. این عزبز بختری خیلی کزام وزایی بوده معروف بوده به جهر حدیث <تصحیح> نظر به این کتاب تاریخ برگزاد دمکان یک سرانه این نمو که اصلا شما بیدار خواهی میشه به اینکه حدیب جهر بکنه کاریش یکیش محمد بس سوال درجات باز از بن محمد بن خالد ان عزبز و سنبی ابن محمد یک چیز انجیبی کنیش اینکه دونست این رجوع کزام و البته به ابن قضایی داره احادی سبو سدیل به نظرم ابن چیز ابن این مطلب درسته یعنی واقعا خب قاضی هم معتبر یا اون دهنه قرشی بوده یعنی امام و صالب ماذرش به زرکیت گرفت الان یه حال تا حتی مدینه قاضی بودی بغداد بند قاضی میشه و هر حال انصافش و بود داره قاضی بوده چی بوده من نمیفهم جهل حدیث رو خوب میکرده حالا چینا من برجام نسیم اللهم در خوبز ما سلیده این ماله همینه ماله همین عبول بختری کسا کسی دیگه <تصفت> این <تصفت> حدیثی که الان شما شنیدین خیلی هم معروف میگم میگه آهدیثی اون سیده سو تو کافی هم آمده این حدیث ماله همین عبول بختری <تصفت> این هم <مال> همینه رسول <تصف> انبیه ها لغو برسد نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه چون نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه این نه نه نه این مطلب نه نه نه نه نه نه نه نه کرده نه نه نه نه نه نه رجال کشی محمد ابن مسعود یعنی مرغوم عیاشی حالا حدث انه علی یعنی محمد ابن فیروزان رو قومی همین تازهی هم اسمشو بردیم این هم از اجایی روزگاره گاییم خود کشی میگه علی یعنی محمد گاییم عیاشی میگه این که استاد شاگر زن میگم کشی ای اوهامه عجیب حجیب خرید داره مشایخش و مشایخش محمدی که جوابجار شدن از قال واض حدس احمد احمدزن محمد محمدزن ابتدی ابن, ابن فیضان توصیف نشدن میشد ازش معروفه. حالا حدس نه احمدزن و محمدزن خالد البری. ایشون همون بریه فسره. ایشون سرپس. حالا حدس نه ابن بزنثی. بزنثی جعفر رحمت فکر میکند بریه فسره بزنثی نامیده است. سرط خرابیده. آن اسماعیل ابن جابر ایشون سرقت نه بی عبدالله. آل واد رسولان یحمل و حاضر دیپ کی کلتر ادوج. یان قونا به تعجیل المقتلین یکی از چیزها که رخ گذشته اون مخصوصی نداشت و نداشت الان یکی از عجایب این شریعت مقدسه خود پیغمبر خبر دادن که یک نکته که سبب برائت شریعت اینکه که این دین یک خاصتی داره که برای اثر گذشته زمان در دینهای دیگه این خرافات اضافه میشه خرافات اضافه در این اصلا یه تها در سی سال یک طبقه دو طبقه ممکنه خرافات اضافه میشه. بعد یک نسلی میان این خرافات از بین میبرن خیلی عزیز یه ها در دین پی کل قرنه قدور ینفون انها تعویل المبتلین و تحریف غاری تعویلهای باطل و ها رو از بین میبرن و انتحار المبتلین که اون وسیله آتش دو دو آتش میدنم این مثلا خرابیهای آهم رو از بین میبرن بدی های آمن این علایه که از اجایر اخبار رسول الله همینطور هم هست لیکن این که ایشون کل قهم قدور رو به معنای رواح گرفته این گوشن نیست احتمالاً قدور مراد عیمه علیه من سلام باشن عیمه و کسانی که اونها فرار روزن معلوم نیست مراد راوی باشه علایه اینه اینه از اجایر اجایر از احادیس رسول الله از شماره 66 اگر آن خواستند من دیگه از فردا همیشت مراجعه کنند از شماره 66 شون آمده تا شماره از سلم وضوع با سعادتون بله. بله تا شماره 73 از 66 تا 73 حسانیت متعددی برای حدیث منحفظ الله عمدی البعی حدیثاً اغیرده قیلی اغیرد سنی هم زیاد دارن حالا هم اغیرده چیه؟ سنی هم داره تو این حدیثیشون طرف سنی هم توش داره حالا من فقط برای اینکه از اینو مجموعی حسانیتی که توما هست حدیث